اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا تدعنا تعالی دائم مشایئ اللهم فرج جميع المشتري ورحمنا برحمتك یا ارحم الراحمین عرض شد که بحثی رو که در اینجا مرحوم شیخ در اول سالس مطرح کردم موارد استثناء قیبت و موقع اول یه بحث کربیش اگر مسئله برخلاف باشه برداشتیم شبه توضیح دادیم که انصافت مطلب ایشون درسته و جای بحث نداره اون بحثه و اما بحث استثناء که بلو مسئلتی نباشه متریاه به فز جایزه بعد مرحوم شیخ حالا یک جمعی بین عبایت شیخ و مرحوم استاد میکنیم که نکاتی که هست مرحوم شیخ متجاهده به فسر و جایز میدونن از رو تحلیش این فین من لا یوبالی به ظهور ای به ناس لا یقره ذکر و به فسر ایشون در استدلالشون نازرم به اون حدیث مبارک ذکره که اخاق ما یقره. آی خوبی فرمودن که بلا بین شیعه و سنه اولا نوکن شیعه و سنه موافران راسته همینطوره بله، و بعدم ادله را متعرض شد محوم شیف میخواهن نه لکان فی مقام زمیهی کره و من حیث المزمه لکن مزمت بر فسر متجاهل لا تحرم کما لا یحرم و قد تقدم على صحاح حق فل مختاب این بهترین وجه همینه که انشاالله شاء الله در آخر بحث اصل مطلب همین و توضیح شما مفصل است که عبارات صحاح رو خلف انسان مستور که هم انسانش مستور باشه هم عیب مستور باشه او به مایق و مهول و سمع هم این به معنای شرعی اصل غیبت دارای معنای حرفی که همینه یکیه معناع شرعی و این ش خواهی گفت آ خوبیم آخرین بحثش همینه که ما قائل به این نکته بشیم مقل بر از اخبار های مستافیزه مونشه یکیش قول و فیات هارمون جمع الجا هر فاس و به فرف و له و غبت له این احترام نداره غبت نداره ندارهشان این به باید رو در اینجا مرحوم استادم آوردم فمن ضعیف تو در حاشیه علی احمد بن این احمد ابن هارون استاد مرحوم صدوقه این روایت هارون جه منحصرن در کتاب صدوق آمده جای دیگر عمر نداریم مرحوم صدوق رضوان الله علیه از این احمد بن هارون که واقعا نمیشناسیم آشنایی با ایشون به نظرم میاد چند جو اسمش برده با رضی الله و ارز کردیم رضی الله عنه به معنای این که این شیعه بوده بیش از این دولت نمید و توضیحاتش گذاشتی حالا غیر زعیفتون در احمد بن حارون که استاد صدوقه چون ممکن استید به مشایف صدوق ثقافت این جردش رو ارز کردیم مشکل این کار اینه که این ببایت رو همیهی از احمد, احمد برقی نارد کرده ان حارون بن جهن و اون مشکل داره مردم نیست احمد برقی از حارون نقل میکنه. اونی که ما در اصانید داریم و در فهارس اصحاب داریم احمد برقی هن عدی هنه هارون جمع که همی افتیدان کردیم پس این مشکل شقدر استاد صدوق نیست سختی داره و این توضیحشو رو از کردیم منشه این خرابی سند وجود همین شیخ نشبوله ما از این راه وارد میشیم پیدا بعد از ایشون محمد پسر عبد الله است که استاد کله و بسیار بزرگواره بعد ازش خود همیری است که بسیار بزرگواره بعد ازش احمد برقی ان هارون این خرابی داره این سر اینجا خرابی داره بعد احمد برقیه ان ابی ان هارون به این صورت دادش منشأ خرابی هم ظاهر نوسی که در اختیار صد و بود تر این شیخ رسیده این نسخه واضح نبود. بعد داره حارون جمع انصادق علیه السلام اینم مشکل داره روشن نیست مثلا در همین که اخیران خوندی حارون جمع انه هفت عمر عمر انصادق این درسته پس این سند سخت داره و من سخت هم احتمالا جناب آقای احمد ابن حارون به نظر رسیش باشه کنیش فامیه بنیفا و هر حال ظاهرن روایت تویشون خراب کرده به لحاظه سند بله دو تا سخت در سندی این روایت وجود دارم بله ایشون حالا زعیفت و سند چون بد نیست دلاتش بد نیست ولیکن زعیفت دو سند که این شما بعدم توضیح میدونم چون ایشون و قولیهی علیه السلام من القا جلبا الحیا فلا قیبت فلا بله من القا جلب جلبا الحیا فلا قیبت لحب اینم ایشون فرمدن روایت نبعیست و بحثی کردن مردم استاد که مراد از الگا جلباب الحیا نه اینکه ارتکاب چون بالاخره انسانی هم که ارتکاب گناه میکنه به این خودش و خدا حیا رو مراعات می می کنه دیگه ایشون الگا اینشون که ظاهرا مراد این نیست رولار بناهکاری گناهکاری شه قیبکه ظاهرا من الگا جلباب الحیا بین مردم جلباب مثل چادر بوده چیزی شبیه چونکه این عبایی که خانومه عربین چادر زخیم بوده پارچه زخیم بوده بله می فهمان ایشونم این روایت خوبه لکن اللا انهو زعیف و سند این روایت روایت زعیف و سندی این روایت در کتاب اختصاص مرموم شهید مفید آمده فکر میکنم اضافه بر این در جهتریات هم باشه فکر میکنم در کتاب جهتریات هم به نظرم آمده و مشکل داره واسه مشکل سننیه <تصفيق> بعد و من ها اروايات لکی دلاله علا ان الفاسقه معلن به فسق اخلاقی و تله نکته ای رو که ما اینجا اضافه کنیم به کلمات مرحوم شیخ و استاد باره من هنوز روشن نشد البته فهم امینه که غیبت بکنیم فسق اخلاقی و یا فلا غیبتله یعنی کسی که جاهره کردن ما حاضره قائب نیست اگر حاضر شد دیگه صدقه قیبت نکنی یا فلا قیبت لن کلامی که پشت سرش گفته شده غیبت نیست این مراد از غیبت یا غیبت چون غیبت. اون قائب شدن غیبت. اون کلام نیستی در پشت سر کسی گفته میشه و روایت عبل بخته این روایت رو از کردیم اهل سنت هم دارن معلوم نیست روایت باشه به حسن بسری و اینها نسبت داده شده در بحثی که از جامعه حدیث میخوندیم خوندیم و در کتب ما در کتبی کلام ما داریم از عبل بختری نفصده سندی ابن محمد از عبل بختری از کلم عبل بختری ضعیق الحدیثه بلکه متهم به وضعه خیلی اتحام واضحی داره ایشان در وضع حدیثه لیکن چون به اصطلاح به ملا بوده قاضی بوده قاضی اول مدینه بعد قاضی بغداد و رشیدو بوده علاقه داشته و قرشی هم هست یعنی یک شخصیت اجتماعی هم برای خودش راشته به هر حال حرفاش تا یک مقداری جا میگفتاده و ارز کرده این کلام را هم شخص از این جهت مطلع بوده حالا مثلا یک کلام حسن بسی بوده یا مال دیگری بوده یا خودش گرم کرده. یک سندی هم برش قرار داده بوده و سندش بیشتر به امام و صادق بود گفته شده که امام و صادق و مادر ایشون رو ازدواج کردن شاید این منشأ بیشتر شده حالا حاله روایات این شخص بیش ما موجوده مقدار زیادی شد چون نیم رانه همه نه در کتاب قربل اسناد آمده و عمدتا روایات ایشون رو سندی ابن محمد نهم بکنه سندی ابن محمد که اسمش عبانه شخص سغیز مورد وصوف و اتمینانه یعنی شخص جزا اجلای اصحاب نفرد لذا مثلا به ذهن میاد که سر یک مقدار وجود روایتش مثلا در قوم ایران قوم که همیری نقل میکنه در دنیا شیعه رو این جهت بوده و نکته دیگه این بوده که روایاتی رو که نقل میکرده خوشمضمونه به مرحوم ابن قضایری بیوه روایه توی رو قریب با تو من از صدا میگه نافه ابن قضایری اون ثقات رو تضیح میکنه این زعاف رو توصیب میکنه توصیبش نیست راست میگه یعنی طرف مرد ملایی بوده ولد بوده ناسته ایک کلام قشن بوده مال حسن بسری مال دیگرم دوشت رو حسن بقرار میده بوده ان جعفر نهدی ان آبای ان رسول الله علایه حاله این ببایت عبل بختری این روایت نیست در حقیقت اصلا صدق من بلقم باش نمی کنی دیگه لکن توی کتب اصحاب تو کتاب های بالای اصحاب آمده و ظاهراً علتش همون صدید و معنا بودن شه. یعنی معانیش بعد نیست خوبه قشنگی حالا این درواید که در عبارت اهل سنت هست و بعضی عبارتش هم همین یک وقتی آدم میاد خیلی که اگر نان نبود عبادت نمی این باره خود عبل وقتی دید کسی دید نمی اللهم لولت خوبست ما سلیه این جو سلیه همین شخصید خب این برای یک جامعه یا برای یک به برسای زمان معین از از جامعه خیلی جا افتادگی پیدا میکنه. کنید علاین ليس لحوم حرمه صاحب و حبا مبتده این نکتش این بود که ارز کردن از حدود سال بیشتر 150 به بعد یواشواش سعی کردن افرادی رو به اسم اینکه که مثلا اینا بدعت دعه داشتن حدیث زایع کردن کلام رو کردن اسم رو ادهه میگفتن او اینا نگیم این قیبت این افراد میشه این افراد مثلا ظاهر و سلایی هستن اینا آمدن این منشأ این شد که این شد رو عرض میکنم جرح و تعدیل رو از قیبت خارج کردن به این هم همین مثلا صاحب و هروا اگر کسی رو این بدعف بزار این حرفای نامروض میزن این باید بگیم تا امرش روشن بشه ول امامون جائر اون امام جائر در روایات مختلفه یک نواق نیست ول فاسقان معدل به فسته در این روایت عبل بخی و روایت دیگه اخصاصی نداره البته متن روایت یعنی با متون مختلفی این روایت داره متن شکن نواق نیست لکن در معظمشون الجاهرون متجاهل به فسقه المعلم به آمده یا امام یا بدعه صاحب البدعه آمده پس این روایت لحاظ سندی ضعیف، اصولا ثابت نیست روایت باشه احتمال داره که تو همون جامعه اسلامی همینطور که حسن بسیم نصفت داده شده از این زمان راه افتاده که مثلا چیزی باشه و اجمالاً معناش بد نیست حالاً اینشانه در بحث جغب و تعدیل چون آمله در مستثمه اونجا متعرض میشه برده منها و بخشون قولیه علیه السلام من آمر الناس البته این روایت چیز پیشون در این هاشیه نوشته خب این ضعیف هست بخاطر خاطر بعد نویشتی قبل مستردگ ان القدر ان نبیل هست قیبت این ماله قطف ناوندی است قدس الله نفسه و گفتیم مجموعه روایاتی رو جمع که ممکن سندی نداشته باشه و هدفش همین جمع آوری کلمات بوده سند نداره قطف راوندی اینکه که اشون مرسل و ان سید الله این سید فضلالله راوندی غیر از قطفه این قطفه همیست که قبش در حرم صحنه حضرت معصومه هست اما سیل فرزالله بیرزی سیدم هست سیل فرزالله عبا زیان حالا امام سیل فرزالله را و از تونجه چند دفع از کردم توی قدم های اصحاب تونجه که من اولین کیس که از شبیر به امام میکنم انه امام سیل فرزالله را و رحمه الله ارواعتن لیست قیبت هم قیبه الفاس قول مؤلن به فسقه بعد نوشه مرسلتون در نشه مرسل نیست در, در کتاب مرسل قولن مرسل نیست عرض شد کرارن و مرارن و تکرارن این همون کتاب جهتریاته من همیشه عرضی میکنم قضایی ها رو از سطح بالا کتاب جهتریات که در اوائل قرن چهارم در مثل نوشته شد یکی بار همون اوائل قرن چهارم به بغداد آمد و از کنیم افرادی که اوبردنی که زرده به احمد یکی اینا رو گفتیم بگیریم خواهد تکرار بود جا نیفتاد بین اصلا این کتاب جا ج و از کردیم. به نظر من بود بودیم کتابم کتاب سکونی است. تا زمانی که توضیح کنیم، اونها هر داره. و هر حال قرن چهارم بین اسباب جانی افتاد و تا قرن پنجاه مسی شکوت زدی. اینا از این نقل می بعد از اون باز ها در قرن ششم توسط سید راوندی همون کتابه، همون نسخه بغداده. اگر نسخه ای است که توسط و قول خودشون شهید رویانی از علما شافعی است. اون هر کرده، رویانی هر کرده، ستازه ازشون گرفته متاسفانه اینم وا جان یافتان. مثلا فرض محقق یا علامه یا شهید اول یا شهید ثانی به اسم نوادر اسمش گذاشت. اینم جان یافتان. در همین سوم بود که از هند آورده حدود سال به نظر 1200 خرده 278 نوشته پشنو چاپ تو تاریخش من حفظ نکردم. تو ذهن نیست این نسخه حاجی نوری ازش نقل کرد ارز کردیم بعداً مروم های نسخه چاب کردن این نسخه جا افتاد الان ما از کتاب جعفریاد در این تاریخی که جعفریاد داره این نسخه سومه پس اینه که اینجا آمده سر فضلا نسخه دومه حالا دیگه به جای بحث مرسلتون مرسلیست این همون مرسل سندیست هم که داره مرسلیست من این نسخه دومه اگه نسخه نیست یعنی بار دومی است که این کتاب در حوزه های شیعه مطرح میشه شیعه اسنار شری ترصد سید فرزاده را ولی که جایی میفته بازم جایی میفته بین علما و بین فقها این کتاب دو مرتبه هم با این تحریری که شما دادن به اسنار این شو سند دارن دیگه کاملا واضحه که همین سند جعفریات و نُسَریش هم واضحه یا ابهام در این قسمت ها هست که اینکه انقدر میخواستن قایر اشعارشان به نه من تکرار میکنم تو برای شما ملکه بشه که اصلا هر وقت اسم کتاب جهتا یاد بردیم تاریخشون تو ذهن تو باشه و برخورد مشکل این نسخه غیر از این نسخه دوم اصولاً جان نیوفتاد و اصولاً این قسمتایی بوده از کتاب سقطونی که اصحاب نقل نکردن چون از کتاب سقطونی است که اصحاب نقل نکردن اضافه بر او این تیکش تو نسخه قرن 13 هم, هم نیامده روشن شد چیم صد میخواستم این یتیکش اربعه تن لیس غیبت و غیبه این تو نسخه فعلی ما جعفریات هم نیامده این نسخه قرن 13 این دیگه نسخه ها رو دیگه تاریخش انشالله شاء روشن شد و کیفیت بررسی اونها امروز من مثلا گفتم که شاید بیارم که آوین نگاه بکنن بدونن بحث از کجاست و کجا ایشون گفتن و چه جوری بررسی کنن پس این مطلب هم انشالله روشن شد و منها ما روی آنهم علیه،, علیه, س... علیه سلام به طور بنا عادیه. این من در وقت توضیح دادم. این روایت در این آب در نشان طورا عادیه از هزار رضا آن عبیه آن آبایی. طورا عادیه نیز این نسخه کتاب صاحب در رضا. از که دادم هزار رضا با خاطر نشان زده تا اون که ما میدونیم از یک حدود مثلا ده سال قبل از رفات قبل از رهلت ایشون مثلا حدود سالهای صد دیگه حدود باید باشه اونی که ما داریم یه نسخه سال 94 داره که سمیه طور سال صد این صد وقتی شوهت بگیم سال نوت سال که دویست و دویست وفات رهلت ایشانه ای از اهل سنت از شیعیان خالص ما هم کسی توش نیست ولی یکی از مال پسر برده ده بله ممکنه شیعه باشه اما با شما شخصیت علمی ما چون در اون زمان شخصیت های بزرگی داریم مثل نبی عمر مثل مثل نه همون زمان دیگه مثل بزنکی که خدمت امام بوده مثلا بزنکی این کتاب نقل نکرده <تصحیح> اما اولش گیر داره وقت این افرادی که کتاب اسمش هم ارز اسم این اسم صحیفت و رزا ای یک اسم انتظاییه گاهگاهی اسم این آمده مسند و اهل بیت چون هزار رضا نبی هم آباهی این رسول الله اسمشن گاهی آمده مسند اهل بید مسند اهل بیت مسند و امام رزا مسند ان ان و کرراسون انه رزا جز آن انه رزا در کتب اهل سنت هست موارد انسان کتب اهل سنت توی این رسال بیش از ما داره بیش از مداره در ک رژالیشون به اس بردن. ما کمتر داریم در فعالیت خودمون ما از ساح هزاره یکی دو تاش رو پارز خودوم داریم. هر سلام اگر بخویم جمع بکنیم فکر میکنم حالکی ها ندارم بین 6 تا ۸ تا تا سر داره خیلی یاد هیچ کدوم از علمه این قدم ما نداریم به اندازه هزاره نداریم. هیچ کداومش هم بزرگانش یه بلا نکنم بل ثنا هم من بامهرا یک دانه از این ها را شیعه بزرگ مثل بن عبدالرحمن یا بزندی که خدمت حضرت بوده یا فرصمی مثلا جناب ابن عبی عمر نقل نکرده و تا اونجای الان تو ذهنمه به استثمه حال یک مردی که نیست از این باشه هیچ کدومش هم در کتاب کافی نیایمانده دقیقه میکنه یه فعلی ما دیدن مثلا مرمان صدوق چند تا سنده برش داره توی اخبار اخبارزو چند تا سنت تو خسال داره تو امان یا که اسانید متعدده اسانید نیست این در حقیقت نسخ مختلفیست از همین کتابی که افراد مختلف از امام روزان بین اینها هم اون خسوم انوجه یعنی همه اینها یک نواخ نبودن یک آقای گاهی میشه یک متن هفتش نفرشون نهاردن گاهی یک متن یک نفر نهاردن گاهی یک متن چار میکنن نهاردن دیگه من خیلی توضیح نمیدم چون سابران گذشت پس اینی که ایشونش به طرق ماورویه و طرق عدیده از هر زررزا صابونده علیه ابن ابی همان اباؤه همون ترتیب این در حقیقت نسخه مختلفی بوده که افراد مختلفی به اسم صحیفه زررزا کراسن انرزا در کتاب میزان زررزا میگه لهو جزء انرزا لهو کراسن انرزا لهو صحیفتان لهو کتاب و لهو مثلا مس در این کتاب چاپ شده در بین زیبیه ها مصندل امامورت ها مثل مصند چاپ شده از کردم طورش در این آن احرسانت زیاده زیبیه ها هم داره. پیش ما شهرت این طور از زمان صده اوگه در و کار خوبیه یه وقتی هم خدا هفتون آیتایی جمع کرده در این صحیبه طور زاره و که خب این تحلیل کرده میکنم ذکر نشود این تحلیل داره در کتاب اوال لالی ده تا طریق داره برای سیف‌الدین رضا و این طرق ایشون در هیچ جا نمنده به ذهن که همش جری باشه که تو ما این روایت مال رضا است بله غیر از حذر رضا سماعاً کرده یعنی اینکه طرق عدیده است طرق عدیده مال رضا است در صحائف مختلفه اومشن برای احاطهشون چون این احاطه کلی بر مطلب خیلی مهمه هزار رضا هم در مدینه یکی از امتیازات هزار رضا به خلاف حضرت موسی سنجر، تو به خلاف حضرت سادشالی مقربی مطابق با حضرت سجاد میه، مقرب حضرت واقع حضرت سجاد میشدن. چون یباشایشون ساده جدا کردن مذهب رو اهل اه مدینه مقدار احتیاط میکن نزدیک نمیشودن. چرا احترام ایشون محفوظ بود اما و موسی سنجر هم کزاله. اما هزار رضایی که از مزایای این بود که خود اهل مدینه هم با ایشان سنیه ها می کردند. شاید این در اونجایی که من دادن به این نه از کلم در تقریب و تقریب تقریب و تحذیب یا تحذیب و تحذیب ابن حجر تحذیب و تحذیب ابن حجر داره که کان یفتی فی به رسول الله نهزه رزاده و هو ابن اشین سنه این بیس سالیگی پیش سال تحمل حدیث داره تو این کتاب حدیث که در چه سن انسان متصدی تحمل حدیث باشه مشهورش بیست سالگیه اما یکی در بیست سالگی فقیح باشه نه تازه راویم این در برای هزر ازاده. این بحثه حالا مقام امامت که بالتر از این حرفاست که من مخاب نقطه دیگهش معلوم میشه که هزر اینقدر واجهه اجتماعیشون قوی بوده که اقلا لاعقل سنیه ها متعصب یعنی سنیه ها این تأصب نداشن که هز راستاً تو مسجد مدینه در سن 20 سالگی فتوا بابان فریق آرایشو مطرح میشه و این تجزیه و تحلیلی به نگاه کنید من فعلا جای دیگه نریدم شاید جای دیگه باشه اگر احتمالا هست کان یوفی مسجد نبی و هو ابن 20 سنه رضی لذا این سبب شد که این همه ما صحابه از من عرض کردم تو اونجایی که من میدونم یکی دو تا صحیفه یک صحیفه از, از از سجاد داریم از امام باقر نداریم از امام صادق شد مجموعه الان همهش به هم رسیدیم 20 تا دربیار تا 40 تا 20 تا دربیار از مسند جعفر 34 تا داریم از حزر اجازه خیلی داریم بین 60 تا 80 تا به نظر من اگه سندای درودآورم اضافه بکنم از اینا بیشتر بشه و از هزار جواب یکی داریم از علی بعدا نداریم عظمم این راجع به این مطلب پس این روایت اما این روایت هم جداگانه از امام صادق از سماع رسیده اون دیگه طرق نداره یکیه اینه که آقای خوبی فرمودن ضعیفتهون بله لعثمان بن عیسی ظاهر شد در اون وقتیشون اون عثمان بن چون واقعی بوده ضعیف میگه مثلا یه تصدیق چیزی صریح سریح هم صد نداره چیزی هم گفته شده قرار این دو ز همون چهره ایه که در واقعی پول گرفت و منکر امامه نظر داد شده که از افراد که پول گرفتن پولی پیشش بود عثمان نیزان ده هزار درهم بوده چی بوده؟ حالا یا حاله حالا من وارد اون بحثم که واقعیت داشته که متهم شده ادهی که پولهایی گرفتن تا هفتاد هزار درهم و اینها حالا اون بحثش وقتی خیلیگه یکی پیش آمد اما نشد خودم مراجعه به کتاب موجم بکنن و که منش بوده مسلمات بوده این مدتی که خدمت مرمه های بودی. شنتی که عثمان بن عیسی اش اشاره نمی کردن این ظاهرا مبنی در مبنای جریش عثمان بن عیسی قبول دارن بله یه بحث از زاویه دیگری است و اون شرح حال این این از روایات واقعی که عثمان بن عیسی داره عثمان بن عیسی داره سماع داره زرعته. این یک مقداری بود از یک جهت فهرستی که نظر ماست بررسی میشه اونش یه وقت جاش موضوعش میشه اما خود عثمان بن عیسی قابل اعتماد مشکل نداره این ظاهرا عرض میکنم نشد من نگاه کنم معجم وگه اون بعد کلت ما توی این مدت 8 سال یا 9 سال در و 8 سال که خدمت مرحوم سال بودیم یک بار نشد چون عثمان بن این همه روابطش هم بود از عثمان نبود شاید مبنای سابق ایشان بوده پس و انصافا هم بهترین روایت ما نحوی همینه است توی مقدماته این در حقیقت روایت سما است این ما روی انهو این انهو رو باید بگردیم به امام وزا از امام وزا به تو رو بعدیده اما ایشون هم بعدن نوشته و فی الوسائل عن الخصال و لعویون بعد نوشته ما انال خسال و اما ما انال اویون نوشته فرواه و صدوب به طرق سلاسه ما خسال کلان و فی المستدر به طریقه این مجهوله داود ابن سلیمان و احمد ابن آمن توجه نکرده. این مجموعه این حدیث با پنشیش طریق از همون سعیفت روزاد یعنی در چند نسخه سعیفت روزاد آمده ایشون این اسم برده اسم مقدرده روشن شد اینها مجموعه هستن مثلا یک از تو اینها تو این پنشیش از همه اینها معروفتر پیش ما و حتی پیش سونیا همین نسخه احمد ابن آمره احمد ابن آمره تایی همین نسخه است که نجاشی هم اسم حتی خود نجاشی وقتی اسمی میبره چون اینو به حساب پدر اساساً نام‌کنذر بعد که میگه لهون و ستان انرزا بعد میگه و النسخته بر ذکر و و النسختا حسنتهون این اصلا این از, از مواردی است که انسان یادداشت میکنه به خاطر اینکه کیفیت کار مرو نجاشی روشن بشه از این عبارات نجاشی مثل همین کاری که ما داریم میگیم خود ایشون احمد بن یا پدرش رو پس ازش ما یادداشت میکنیم اون به نظر احمد نامه پسرش عبدالله احمد از او نامه اگر تراموش نکرده باشه معلوم میشه خود نجاشی هم این دو نفر نشناخده مثل که من هم بگم نمیشتسی اینا رو. من میشه خود نجاشی هم مثل ما نشناخده نجاشی چه کار کرده متن کتاب رو دیده وقتی بگه من نسخت و حسنت رو دقیق کردی که من حیلیم در مسائل دقت بکنید اگر متن کتاب دید چی میشه میشه اشاره اگر شد اشاره یا به اصطلاح قدیمیا هست نه نوبت نجاشی سوا ممکن است ما متن کتاب بگیم نه این حسنانی سولوشن یک مبانی ذهنی خاصی داشته مبادی فرضا نصت از هرجا اینجا تعبد به کلام نجاشی نمیتونه داشته باشیم خوب دقت کنید این خود ارزش چون مثلا گفت سه قطعا برآن راهی نداریم میتونیم کلام نجاشی و تعبدن قبول بکنیم خیلی دقتون فرق بین مرز تعبد و تعقل را اشتباه نکنیم این که گفت و نسخه و حسنتون یعنی به لحاظ سند و به لحاظ راویشون نتونیم سکاری بکنیم مثل ما هم نمیتونیم معروفه که گفت که مولا گفت ما با جوانی فرقی نکردیم گفت چرا گفت یک سنگی درو خونه جوانی نمیتونستیم بردیم حالا نمیتونیم قرر هر دو دست هم نه نجاشی شناخته این دوره نفر کیه نه ما می‌شناسیم نه فرقیه لکن اونی که ما الان میدونیم در بین حالا 60 تا 70 تا 80 تا کتابی که به اسم صحیفه رضوی هست اشهرشون همینه همین نسخه چند تا غیر از این هم ب... نسخه مرحوم صد و اون اخبار مقدار زیادی از ما رو گرده چون اون اخبار رضا سیگه این نظرش این بوده اون چه منصوب بعض جنگ جمع بکنه این من سابقای ای توضیح دادم، بعضی توضیح تکرار بکنم که این حالت این ها مثلا برخورد رجالی کردن برخورد رجالی موقع بکنیم در این نسخه مشهور هم نجاشی برخورد فهرسی کرد یعنی از نظر رجالی دیرکن وقتی نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی این میشه که بگیم ما خب شما نظر مبارک دید که این نسخه حسن از تو ما نظر اون نه. و اشکال باده که تعبودن حرف نجاشه که قبول نمی کنیم علا خوب نیست دکن فرسون مثلا ابن حدی در کامل فضعفا یکی دو تا از این نسخه اسم بره خب ایشون به احترام عزادزا حساب کرده چیزی نگفته اما حدود دو صفحه یا سه صفحه روایاتی رو از این صحیفه رزا آورده مثلا کاسمی در چند جای الاور بهشون فلان مثلا آورده ببینم قرآن دقیقاً بعید ماشین رو در رسول الله ص بدیم این مزامیر اونها چون خودشون روایتشون از رسول الله محدود دقت میکنید من میخوام بگم اینی که او میگه بعید ما اینها رو نسبت بدیم و نجاشی میگه انصات هر دو اجتهاده خب روششم شد اون اشكال سنني استشهاد اشكال نجاشيان استشهاد اما خود ما الان بخویم نگاه بکنیم وقتی معلوم بشه که نجاشی به سر چی بدیم ببین تعبد ما از نجاش همون شد بقیه رو خود باید نگاه بکنیم الان مثلا همین حدیث رو تصادفاً ما در مصادر از سماع علی عبدالله داریم حدیث قشنگی هم, هم هست حدیث بدی هم نیست به نظرم خود سنی ها هم شاید کرده باشه این طور نیست آلا منفرد باشه بیم این وضع این روایت پس این روایت به طرق عدیده امه رضا آمده به طریق واحد از امام صادق و در مجموعه روایات متجاهره به فس به نظر ما این روایت معتبره و صح روایات بابه این همیشه احداده که رفتش به ما نحنفی اینه و این هم که این جنبشه که این ضعیفه از استاد نرکده ضعیفه این احتمالاً این مثلا کود آهی خوی نشن ولیکن روای به جمعی اطراق آه زعیفت نه این طور نیست این دو, بق... دو قسمت داره یک قسمت به امام صادقه این یک قسمت داره یک قسمتش به این در نسخ متعدد سعیفت رو رضا آمده نسخه پلان نسخ پلان نسخ فلان. در نسخ متعدد آمده از که نسبت به این نسخم امو خوزون منوشه اون طرق هیچ کدامش پیش ما واضح نیست. ظاهرن هم سنی باشن. حالا مثلا پسر بردر برپرزن شیعه باشه مثلا چیزی دیگه ازیشون ما نداریم. جزو روبات نیست. جزو بزرگان نیست. عرض کل مرمون نجاشی یکی یا دو تا یا فوقش سه تا از این نسخ رو معرفی کرده. که <تصفح> این اشهرشونه. مثلا در اون جز اون نسختون کراسون انرزاده است. الا <الآلان> اینطور من عمل ناز من عمل ناز فلم یا هم و حدسه هم فلام یک هم و وعده هم فلام یک من منهرم مت و کمالد مروه یا مروه تو هو مروه مردانگی از مرد و ذهرا عدله و وجبت اخو این روایت رو ذکر کرده این روایت دلالتش به مفهمه این مشکل دلالتی داره لذا خود مرحوم شیخ هم آیه خوبی گیر نوشتن هم خود مرحوم شیخ قدس الله و سره بله نادر نداره بله شبیه بله شبیهش بنوشتن که به مفهمه این روایت که من ها ناس الناس فلن هم و حد دست هم فلم یکوه به هم ببخشی میکرده و بعد هم فلم یخلف هم وقتی به این معناست ببینید کان من من یعنی کسی که ظاهرش با مردم خوبه دروغ به مردم نمیگه خلف وعد نمی کنه این دیگه نمیشه قیبتش کرد. مفهومش خلافش اینه که اگر نه کسی متجاهله به فسخه. این معناش اینه یعنی به عبارت اخراج این ستا سفرزی که آمده من آمدن ناس تا هم و حدسه هم این کنایه از مستور بودنه یعنی شخصی که مستور بود حرومت قیبتو محکومش اگر مستور نبود یعنی اینوز قیبتو روشن یعنی این اح... امور رو که پیغمبر نهارو فرم... فرمودن یا امام رو بعد تردید فرم یغلم هم کنایه باشه از مستوریت و عدم مستوریه من آمله ناس یعنی ممکان مستور ولی گناه داشته باشه اما ظاهر نکرده هر به تو مفهومش اگر گناهشو ظاهر کرد و مستور نبود مثلا آمله هم ولمه هم حدت هم کل با, با مردم صحبت بگونه دروغ میگه این ناس یعنی تجاهر ناس که از تجاهر من آملا ناس تقرید کردیم؟ وقتی بگه من ناس فلا بودن هم یعنی برپرزن گناهی داره اون گناهش ظاهر نیست در ظاهر بین مردمش مصدوره این روایت دلاته به محفوم داره صافا سبوت محفوم در این جوجه ها خیلی باید چون انحصاری بودن باید بشه و باید اثبات بشه که روایت ناظر به تمام خصوصیات شما ما در با محکوم ارز کردیم همینطور که دارن که باید بین ثبوت مفهوم یک نوع ترتبی باشه اولا ثابت کنیم مثلا جا ازده پشتار خوبز باید یک ترتیبی بین خریدن نام با آمدن مهمان باشه ترتب به نحوه تلازم باشه تلازم به نحوه علیت باشه علیت به نحوه علیت باشه تا مفهوم ثابت بشه و لذا ارز کردیم این که ترتب و تلازم هست این از این در میان اینجا عرق. اما این که به نحوه ایلیتی این از مقام جلو و اعتبار در میاد در امور تکیونی ایلیت در یعنی ممکنه معلول باشه مقدم شده لازم نیست که من ایلت مقدم و اضافی بر او با اطلاق مقامی باید اثبات بشه که ایلیت منحسن هست پس دو تا رو ما اثبات کردیم چون راه خود اون رو ندارن دو تا رو از لغت و ارد داره بردیم. یکی رو از اعتبارات قانونی که در اعتبارات قانونی هرچی که بعد از مطلب باشه چون اعتباری یه که نیست. اون علت مثلا انجا از زف پشتر خوب میفنید مجیع علت شراح خوب از اصلا خود این چون تو مقام اعتباری انحساب رو هم باید از مقدمات حکمت در بیاره. اگر مقدمات حکمت جای شد ان حساب در میان مقدمات حکمت در اینجا روشن نیست. اینجا روشن نیستی مقدمات حکمت بله. حالا غیر از اون اشتالی که ممکن من عمللا ناسانه الذي باشه اگر نهلدی باشه که محفوب بنداره. با معنی من شرطیه باشه اسم شرط باشه و تا محفوم بر حسابشی و ال نداره. بعدا ال ظاهر من حال ح من دیگه، اعتبار و عدالت فی حرمت برن. این اشکال دیگه مرحوم استاد یه چند باریشون تکرار میکنه که این معنی که این شخص باید پاک و منظه باشه تا قیبتش حرام بشه عادل باشه چون ظلم نگی دروغ نگه ظاهرا این اشکال استاد وارد نیست این اشکال دوم استاد وارد نیست چون این نه به معنی من آملا ناست نه اینکه که این در باتن گناه نداره میگه یک شخصیست که در ظاهر از مردم چیزی ازش نبین چون ظلم ازش نبینم ممکنه ظلم سرور انجام بگیم توش نداری که میگه اگر این مراد جدی اینه کسی که چهره ظاهریش بین مردم مستوره به اصطلاح ما این قیبتش هرامه ولو گناه مرتکب میشه این آملا ناس ناس رو بگیریم معنای شهرت و مردم. نه ممکنه من میدونم در باطنش آدم فاسقیه اما جلو مردم ظاهر نمی کنه. من به نظر حدیث نازره به این جلو مردم آدم فاسقه فاجه باید جلو مردم ظاهر نمیکنه. کنه تا آمونش با خود هسته در باطن خرابه نماز امام رو خود این ریبتش حرامه و کمالت او و وحر عدلو و وجرت اخوتو البته اگر نظر آقای به این زیلش باشد که کمالت مروبطه در واقع پاکه و اگر در واقع پاک باشه قیبت چی میکنه دیگه؟ ظاهرا مراد امام اینه که اگر کسی در زواهه البته این روایت و روایت ابن نوی یعفور چون این روایت توی جدیگه بحث شده مفصل بحث شده توی کتاب قضا باب شاهد اداره در شاهد یه بحث مفصل است شنوای خویم توی معجم زیاد بهش اشاره میکنه اما بحث نکردن در این معجم یه بحثی ثونه من اصالت العداله اصالت العداله به این معنی است ما اگر از شخصی فسقی نندیم این عادل خون دقت بکنید یعنی دیگه عدالت احراز نمیخواد همین که فسق ظاهری این جز اون روایته این روایت در واقع نبیعفو جز اون روایتی که اگر کسی فسق ظاهری نداره کمالت مروعته و زهره عدلو و وجبت اخوته را کردم این یک نکته بسیار مهمی بوده البته پیش ما هم نکته مهمی است اداره در باب شاهد و در باب راوی نکته مهمترش در ثابت به خاطر در قضایی بوده چون می رفتن افراد شاهد می‌وردن بعد دیدن که این شاهد عادله ادبه از اهل سنت می‌گن با اساتید اداره ما همینی که از این آقا گناه علنی و عادله اینجوری میگفتن احراز هم نمیخوا. ندیدن یک گناه علنی خودش کافی است برای حکم به ادالتی میشاست علاوه این, علا این که ماکان به خاطر ذی احتمال داره که چون زهره ابلوه داره زهره یعنی شما به حسب ظاهر حکم به ادالتش بکنه نه اینکه واقعا اینطور باشه الان که به مکان این روایت اصحه روایات بابه من دیگه بقیه روایت اینقدر نخونیم اصحه روایات باب اینه همینه که روایت سماعته به رو مهرانه و صحیح همه هست صحیح این معتبر موسقه است و و روایت موسقه است و معتبره ولکه کلام در مدلول روایت اجمالا از روایت در میاد. غیبت در جایی است که شخص در ظاهر در مقابل مردم مرتکب گناه بشه هرچ اجمالا خوب اطلاقش و در مقام شک و از خصوصیاتش نشه تواصل کنه الله الله